این داستانک جقد. تو سیصد سال پیش که مردم مثل امروز اینقدر موزی و حیلهگر نبودند، در شهر کوچک اتفاق عجیبی افتاد. جغدی بزرگ که عوام اون رو جقد جارزل مینامیدند، از جنگل به شهر گریخت و به انبار یه شهروند پناه برد. اون شب از انبار بیرون می آمد چون موقع روز سر و صدای پرنده های دیگه براش آزار دهنده بود. صبح یکی از روزها پسری که کارگر استبل بود وارد انبار شد تا کمی کاه برداره. وقتی جغد و دید از وحشت فریاد زد دوون دوون از انبار بیرون اومد و نز ارباب رفت. بعدم تعریف کرد که حیولای عجیب و غریب که رو توی عمرش ندیده در گوشه انبار جا کرده و طوری چشماشو به این طرف و اون طرف می‌گردونه که انگار می‌خواد همه چیزای دور بخوره ارباب گفت چیزی نیست تو رو خوب می‌شناسم خیلی که جرأت به خرج بدی شاید فقط بتونی پرنده‌ای رو در مزرعه تعقیب کنی اگه یه مرغ بیجون رو ببینی که در گوشه افتاده، فقط موقعی بهش نزدیک میشی که یه چوب توی دستت داشته باشی. حالا خودم میرم ببینم این جور حیولاییه. ارباب اینو گفت و راه افتاد و جسورانه وارد انوار شد. دوروبرش رو برانداز کرد، اما همین که چشمش به برق چشمای جغد افتاد، وحشت زده تر از خدمتکارش سراسیمه از اونجا فرار کرد. اون افتان و خیزان در حالی که اشک میریخت نزد همسایه‌هاش هاش رفت و با عجز و التماس از اونا خواست که بهش کمک کنن که از دست این حیوان خطرناک نجات پیدا کنه. به نظر ارباب همه مردم شهر باید دست به دست هم میدادن تا اون حیوانو از انبار بیرون بکشن. طولی نکشید که شهر پرحیاهو شد. مردم با بیل و کلنگ و میله های نکتیز و تبر مجهز شدن و آماده حمله بودند. انگار می‌خواستند به سپاه دشمن حمله کنند. بعدم شهردار و اعضای شورای شهر در میدانگاهی حاضر شدن و همراه با مردم دست جمعی برای حمله به اون جغت به طرف انبار راه افتادند یکی که از همه بیباکتر بود قدم جلو گذاشت و با یه چوب دستی وارد انبار شد. ولی چند لحظه بعد در حالی که رنگ صورتش مثل گچ شده بود با جیغ و فریاد سراسیمه از انبار بیرون پرید و بدون اینکه کلامی بگه فقط می دوید. بعد از اون دو نفر دیگم جسارت به خرج دادن وارد انبار شدن و اونا هم با ترس فرار و برقرار ترجیح دادن. بالاخره جوونی قوی و بلند بالا که حسن شهرتی هم داشت قدم جلو گذاشت و گفت با حرف زدن و نگاه کردن به حیولا نمیشه اون از اونجا بیرون آورد همه شما مثل پیرزنو فقط حرف میزنین و کاری انجام نمیدین اون جوان قوی و بلند بالا زره پوشید شمشیر و سپری به دست گرفت و آماده حمله شد اطرافیا اونو تمجید و ستایش کردن و عدهای هم نگران بودند که مبادا جونشو به خطر بندازه جوان پیش رفت و درهای انبار رو باز کرد. اون جنجوی مبارز که دید جغد روی تیرک سقف نشسته از مردم خواست که یه نردبون بیارن. وقتی نردبون رو کنار دیوار گذاشتند، جمعیت با سر و صدا خواستن که بهش دل و جرعت بدن. جوان از نردبون بالا رفت. جغدم که اونو رو دید و سر و صدای مردم رو شنید، وحشت کرد. چشماشو به این طرف و اون طرف گردوند، بالاشو به هم زد و منقارشو باز کرد و با تمام نیرو و با صدای دلخراش شیون کرد. مردم با فریادهاشون به سرباز جسور دلداری دادن. اما جوان با صدای بلند به جمعیت گفت: اگه در جایی که من ایستادم ایستاده بودین، جرأت کردین اینقدر فریاد بکشین. با وجود این یه پله دیگه هم بالا رفت ولی بالاخره وحشت کرد. اندامش به لرزه افتاد و لحظه بعد نیمه جون عقب نشینی کرد. دیگه هیچ که نمیکرد با حیولا روبرو بشه. مردم می‌گفتند با حمله که حیولا به قوی ترین فرد ما کرد و با نفس خودش اونو زخمی کرد و از پا انداخت اون وقت ما هم باید جونمونو به خطر بندازیم. همه با همدیگه گفتگو رو شروع کردند تا چارهای بیاندیشند که وضعیت شهر از اون بدتر نشه. بالاخره شهردار گفت، فکر به نظرم رسید. بیاین رو همدیگه پولی بذاریم و صاحب انبار رو راضی کنیم تا اجازه بده انبار و طویلهی که در اونجا هست و به ما بفروشه و ما همه اونجا رو به آتیش بکشیم. با این کار دیگه جون کسی به خطر نمی و در این حال از شهر حیولا هم خلاص میشیم. فرصت زیادی هم نداریم. باید برای پرداخت هزینه کار سر کیسر رو شل کنیم و همه در پرداخت پول سهیم بشن وگرنه به سرنوشت شومی دوچار میشیم. همه با این پیشنهاد موافقت کردن. اونا در گوشه و کنار انبار و طویله آتیش افروختن و جغد بیچاره در بین شله های آتش سوخت. و ارباب انبار و طویله و کاه و یونجه و زورتهاش رو به باد داد کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای ای نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی تی m <مهران> e h a <دوستي> نشانی وبلاگ ما m e h